خیلی یاد را دوست دارن و هر وقت واجه بیان تیرون نواله اواجن جلو ور نومو دشتا جاو و کاشتا، کشتا تو حدس بشتا Kark mori kya nashta Emo gosha mo vashta Mo mo naft vishim terum Beklo mo naft vishim terum Mo mo naft vishim terum Beklo mo naft vishim terum Tut terum Maish safi gushtono چی گیم کمون و بعددن و خیلی گرون ما و نفتشیم ترون خذرو اون ص تو منی یکنگ تنبون نفت و نفتشیم ترون ودمسیره بو از عمر رو از جون ما و نفتشیم ترون توپ توپ س تاکر میین خییا بون مامان و نفتشیم ترون مردم حیرون و فراری عصب شد در بود و دغون تو خواب رشتن و مغبون مشو انگوش بدن تون گجاوی جراو مجنون ما مون نفت بشیم ترون بخدا مون نفت بشیم ترون ما مون نفت بشیم ترون بخدا مون نفت بشیم ترون